بله ولی آواختون در خدمت کارشناس امنیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه جاواقه جاب سرهنگ هستن. بعد بندهم سلام عرض می‌کنم ها در خدمتی شنوندگانی عزیز هستم. سرنگ اوضای امنیتی انتخابات چطوری بود؟ بسیار عالی بود. پلیس پادی 25000 نیرو و 26 فروند هواپیما و هلیکوپتر به خوبی تو نصف این انتخابات را تأمین کنه آفرین آفرین بله عمل گشت ارشاد در این روز چطور؟ بله, بله. گشت ارشاد؟ گشت ارشاد م? نداریم ما تو روز انتخابات که. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو روز انتخابات بله. هر خانمی با مانتوی کوتاه ساپورت بله. آرایش غلیظ موی بلند روی سیان ناخن دراز با, با... اومد تو حوزه رای نه فلجی می... و نغ نه, نه هیچ کسی کاری به کارش نداش چی, چی میگی شما آقا حالتون خوب نیست که ارزم کردم تو روز انتخابات گشتر هر شاد ماموریتی ندارد ولی نیروهای پلیس همه جا حاضران همیشه ای من فکر کنم چسی بدون ساپورت و مانتوی کوتاه هم بیاد بیرون روز انتخابات چ بهش نداره سر همین ها ببینید منده متوجه منظوری شما نمیشم آقا جان آ سر این اینی که خواه. اگه حجاب یکی مشکل داره دیگه روز انتخابات غیر انتخابات نداره که کلا مشکل داره دیگه نه دیگه ببینید پلیس اولویت بندی داره در ماموریت‌ها اصلاً اینجوری نیست که شما بهش نگاه میکنید که آره دیگه نمیشه از طرف به مردم این؟ التماس کنین بیان رای بدن از طرف دیگه بندازینشون تو وان ببریدشین مونکرات که واقعاً شده نی نیست آقا از شما سوال دیگه ای نداری من با توجه به در جریان بودن شما رشی ها را باسر برام به مسئولیتم رسیدگی کنم آقا میگم از این بر بچه‌هاتون که سر صندوقن خواه. یه امالی چیزی نزدین از شمارش. الان برای مردم بگی داغ داغ. نه نه. این جنتی نه بالاخره چی شدن؟ رای آوردن، رای نوردن، یعنی ببینید اونم هم مامر بود، نیست. ما مسئولیت امنیت صندوقم آقا جون. علا با من تماس گرفت. گفتم امنیتی صندوق کامل برقرار است. اوه اوه قندی؟ او او بله, بله این دست پچلوفتی رو آخر می‌ذاریم موازی به باشه سر همین. آقا درستو بعد کن در बारेی مأموری قاله. من سرباز میدم یه بار مأموری محافظ صندوق بودم وان موقعی شمال شهریم بهم گفتن بیا کمک آقا هر کی رو میخوندن من واسه یه خانم علوادت بیزنم واقا که خجالت آوره کی بود حالا فامیلتون بوده نه بابا میخاستم برم مجلس بعد که سربازیم تموم شد دارم باش ازدواج کنم اون کار کنی منم شد بله بعد شما مخاط از خیلی وقتی پیش مشکل داشتید من فکر میکردم جدی الان اینجوری شدی شما ببین دل دلم میخواد این خانم هستن شوهرشین دکتری بعد اونا میگن خانم دکتری. ها. به من هم به خاطر زرم بگن مثلا آقایی نماینده یک حالی و به خدا شفا واقعا مریضه بعد حالی شما تموم هست دیگه بریم آقا جون با تمومه دیگه با تشکرد توجه شما توب شبی دیگر و برنامه دیگر و سرهنگی دیگر با. خدا هم نگه دبین سرهنگ از این حوزه شلوق هم دوست داشت مثلا نماینده بندر من در ترکمند کردکوی من در گز اینا مثلا من متاسفم شما همین جور دارد حالت بدتر میشه یا اصلا حوزه فردوس تبس اینا... سراغان بو خیلی با کلاس خدایی شد یا عالمه جاست ببین آقا جون شما چیزه... دارو آتو بگم اونم فراموش کرده دوباره بخاریشون بابا این نمایندگی مجلس این حال فاله نداره کی. نه نه ببین خط هر ناکه شما دارو آتو بماغه با خب خیلی حال